تصویر پاره پارهی منزو سلطنه پولک پولک بر دیوار آینه‌کاری تالار افتاده بود و بدن چاقش روی صندلی راحت آو انگوار تکان می‌خورد و دست پرزیورش بی‌هواس پرز گل‌های روکش مخمل صندلی را به خواب و عکس خواب آن نوازش می‌کرد بخاری خاک رسوز به راه بود و بوی خوش چوب آتش در فضا پیچیده بود اما تالار هنوز هوا نگرفته بود و سوز سرما از کنار در به داخل نفوذ میکرد. منظور سلطنه هر وقت به خانه منور و دوله میامد بر سر نزدیکترین صندلی به در تالار مینشست چون پاهای کوچک و کوتاهش تا به حمل تنه سنگینش را به شاهنشین تالار نداشت. خانم منبر دوله شال پشمی را تا گردن بالا کشید و اشکش را با گوشه دستمال پاک کرد و گفت عجب مصیبتی بلای ناگهانی بود والا خدا بهت صبر بده منظر چه میشه کرد مقدر شنین بوده منظر و سلطنه مثل همه دفعاتی که بین نگاه به جای خیره میشد لوچ کرده بود و در واقع ذهنش متوجه مصیبتی که منبر و اشاره داشت نبود به مصیبتی قدیمتر و پرگو فکر میکرد و در دل به برادرش لعن و نفری میفرستاد که تمام اموال پدری را صاحب شد و از راه فرنگ یک سر به ینگ دنیا رفت اگه مال ما خواهرای بی سر نمیخورد حالا منم هم یه همچی تالاری داشتم یه همچی بار یه همچی قالی و قالی یه امچکیابیای هر بار به دیدن منورالدوله می آمد داغ ارس و میراث از دست شده تازه می شد و جگرش را می سوزاند. از این رو که نوباوگیش در شرایطی مشابه با کودکی دوله گذشته بود پدرهاشون با هم به ماموریت به قسطنطنیه رفته بودند هر دو در آنجا همسر ترکی استانبولی اختیار کرده بودند زندگی فرنگی ماوانه داشتند زنهاشان بیهجاب و دخترهاشان صاحب خط و خانههاشان مزین به تابلو نقاشی و چینی سفر منور دوله و خواهرش بانو با منزه و سلطنه و خواهرش ملیح زمان با هم بزرگ شده بودند و چند جمله فرانسه چند نوت نت پیانو را در کنار هم آموخته بودند زندگی اینسان و یکسان بر آنها گذشته بود تا در دنیا بر پاشنه دیگری گشته بود مرگ پدر منظور سلطانه، صدارت پدر منور دوله فقط اون الفت دوران کودکی رابطه دوزن را دوام مخشده بود وگرنه سالها بود که وچه شبهی میانشان نمانده بود منظور السلطنه برخلاف منور دوله نه زرافت داشت نه عاطفه نه تنز حواس منور و دلش به مرگ ناگاه محسن خان شوهر منظر و سلطنه بود که چند ماه پیش چاپار خبرش را از راه میان تهران و ساوه آورده بود و چند و چونش هنوز معلوم نبود با اینکه میدید می دید منظر و سلطنه آشکارا دیگر در سر میپزد و سوز مرگ شوی نیست که او را محتاج همدم کرده است بی اختیار ادامه داد انگار همین دیروز بود والله که علی اکبر خان فرمان آورد بر محسن خان خدا رحمتش کنه چه نازنین مردی بود و باز اشک در چشمش روشید فرمان حکومت ساورا که به مهر و امضای وسوق الدوله بود شوهر منور دوله در همین تالار و در حضور خانم ها به محسن خان داده بود همراه یاد داشت وزیر داخله که با قربانت گردم شروع میشد و به زمستان در راه است و انار ساوه برای چله در بساط نیست، ختم. خانم منور دوله بعد از اون که پیام را شنیده بود، با خندگ شیرین معمولش گفته بود، خب بیالتماس دعا که نمیشه مسافر را انداخت. چشمهای من از هنوز تاب داشت، ولی دستش گل صندلی را رها کرده بود و با پره بینیش ور میرفت. درباره مرگ شوهر دل به دل منبر و دوله نداد سالها بود که مرده و زنده محسن خان برایش فرقی نمیکرد. کرد مردی که به مال دنیا عنایت نداره چه خاصیت داره معروف بود که محسن خان از ماموریت که همه با بار بسته و کیسه پر برمیگردند با جیب خالی و بار قرض میآید دست گشاده داشت و تبع باز. از دوازده شکمی که از او زاییده بود، یک دختر و دو پسر برایش مانده بود که به هیچ کدام مهره نداشت. همیشه فکر میکرد که فرزندان مردش اگر زنده مانده بودند، فرزندان بهتری از آب در می آمدند. دخترش شمس سلطنه قدم به بیست میگذاشت و هنوز شوهری در افق برایش نبود. و حالا بعد از مرگ پدر که مرد ریگ قابل ملاحظهی در پی نگذاشته بود، معلوم نبود که سرنوشتش چه خواهد شد خصوصا که نه از جمال چندان بهره داشت نه کمال عباس خان پسر بزرگ 17 ساله بود سر به هوا و اهل دل و منظف سلطنه در بارش می گفت شاشش کرده به امیر خان دوازده سال بیشتر نداشت و هنوز پشت لبش هم سبز نشده بود منظف سلطنه در واقع امروز آمده بود که راجع به سامان دادن به شمسلطنه با منفر و دوله و مشورت کنند ولی مثل همیشه برای عنوان کردن مطلب آجز بود با بیحالی و فقط برای آنکه حرفی زده باشد از منفر و دوله پرسید ملی زمانم خبر کردی؟ منفر دوله گفت بله خبر کردم کم کم پیداش میشه علی اکبر خانم امشب نیست گفتم شبجره رو کرسی بشینن میریم تو اتاق کرسی تا خروس رو نهره میزنی. کرره از راه مدرسه بیاد اینجا؟ امیر خان عزیز کرده دوله بود که خودش فرزندی نداشت. منرزه سلطنه گفت میاد بفهم من اینجا با سر میاد میدونی که با خربونش برم شاپ سر والله ماشالله هزار ماشالله به هوش و گوشش. منظر سلطنه آهی از روی بی حسلی کشید و گفت آه لا از آب و گل درات بعدش هم چطوری با کدوم مکنت و ثروت اون خدا بیامرز که فقط ورسه به جا گذاشت نه ارس منور دوله آمد اعتراض کند منظر سلطنه مهلت نداد خب منور جان تو هم دلت خوشه بیا و برو همون یه کارگون سراس و یه هموم و دو تا خونه و سلام نام تمام هرچین نقدینه بود همراه خدا آقا بود نه بارو بانش برگشت نه کالسکش نه کیسه های پولش من موندم یه زن تنهای لچک به سر کجا میتونم کارون سرا حموم بذاری کنم منو وردولی گفت نه البته محسن خانم که خودش این کارا رو نمی کرد مباشر که هست من از منازو سلطنه با پرخاش گفت مباشر اون دزد ارنوتو هم همون هفته اول که خبر آقا آوردن ردش کردم منو وردولی لبش رو گزید و گفت والله بد کرد حالا چه وقتش بود؟ خوب بود به کارها میرسید جانه؟ حالا گیریم دستشم یه هوا کج بود؟ من از دو سلطنه دندانها را روی هم کلید کرد و تنش را تون ترجم باند که جلوی سیل کلمات نیشدار و پرکنایش را بگیرد. نیامده بود با منبر دول جر را بحث کند، فقط میخواست کسی دست بالا بزند و برای شمسی شوهری آبوناندار پیدا کند، یکی از همانهایی که ملی زمان برای دخترش فخری جسته بود، شاهزاده و هفت پشت شاهزاده، صاحب پست و عنوان و خدم و حشم از این جنس و دور و اطراف منبر و دوله و علی اکبر خان فراوان بود. منبر و دوله که به پرخاش های آنی و سکوت‌های از روی قضب و سلطن عادت داشت و همه را به ملایمت و یا با خنده و شوخی برگزار می کرد گفت من فکر دردسرای سرای تو هم ولی لابد صلاح این دیدی که مباشره رو رد کنی بیلربگی و خیشا و برادرای محسن خان چی؟ اونا نمیتونن مرحمی به زخم تو بذارن؟ از سلطنه چند لحظه دیگر به سکوت و دادن تن ادامه داد و بالاخره با حرص گفت بیلربگی ها و خویشا که همه قزوین نشستن سر ده و آبشون از برنج مهدی خانی خوردن زیاد نمیان که به من برسن برادراش هم که هر دو پیش از خود آقا فوت شدند، بزرگی چند ساله دومی همین پارسال پیرارسال. پیرار سال مناورداله گفت واها شوهر سکین خانم مرد به قسم من بی اطلاع بودم عجب و بعد با شوخ طبعی متعارفش اضافه کرد خدا مرگم بده این سکینه خانم سر چند تا شوهر رو میخواد بخوره برادر محسن خان چند دومی بود من از کماکان با بق و تخ جواب داد گمانم منم سومی میشادم چهارمی درست نمیدونم. منفر دوله با غرقه گفت همینطور ارس رو ارث خوابونده چون شوهر یکی از یکی چیز دارتر. حالا چه میخونه سکینه با این همه تمول بچم داره من از سلطانه که از یادآوری ثروت جاریش باز به غیز نشسته بود. به منور دوله نگاه خیره کرد و گفت اون سر دنیا من این سر دنیا چه خبر از هم داریم؟ میدونم از برادر آقای دختر پس انداخته که باید هم سال امیر باشه یه دو سه سالی بزرگتر منور دوله با لودگی گفت واها بد نیست والا یه دختر بر عباس بگیر عقد دخترم و پسرم رو که تو آسمون بستن اه همه و همه ثروت زنموجانم با بار و خربار ببر بخوند و باز به آواز بلند خندید جنباندن تن منظه ح ناگهان بند آمد، و نگاهش با کنجکاوی روی صورت منبر و دوله ثابت ماند. و گفت: من راستش برای زن دادن عباس نیامده بودم اینجا آمده بودم منور و دوله به تصور اینکه باز حرفی زده است. که باعث رنجش دوست شده با عجله گفت من شوخی کردم به موت منو که میشناسی عباس حالا چه وقت زنگ گرفتنشه او سلطنه که مطمئن شد و دوله از ارزش نصیحتی که به او کرده است خود بیخبر است حرفش را گرداند و برای اولین بار بعد از ورودش با تبسم گفت نه به جان عزیزت فقط آمده بودم اینجا که دلم واسشه دو کلام بگیم و بشنویم یه دمقم آلم و فراموش کنیم چه کنیم دیگه مگه عمر چقدره آدم آه و دم ناگهان بانگی برای بله خب ببین سرگذشت آقا رو مگه من فکرشو میکردم مگه به خواب میدیدم بر دولت شاد از اینکه که لب من لب منزه و سلطنه را به لبخند و سخن گشوده است با مهربانی و درسوزی گفت نبالا کی به خواب میدید صحیح و سالم راست و مکم مثل شاخ شمشاد از اینجا را افتاد صدای قلزیدن چرخای درشکه روی خیابان شنی باغ بلند شد و منور الدوله دوله حرفش را نیمه گذاشت و بازوغ به طرف پنجره های تالار رفت و گفت لابد امیره منظر سلطنه گفت که همانم ملی زمان باشه امیر از جلو مدرسه سپه ساله میندازه و پیاده میاد دو قدم راهه. راست میگید والله خودشه ملی زمانه. منور دوله هنوز به طرف سندلیش برنگشته بود که سر و صدای حرف زدن ملی زمان با مستخدمها و بعد هم تق تق کفش های پاشن سنناریش روی سنگ های مرمر سرسرا بلند شد. و تا منور دوله به در تالار برسد سر و کلش هم در آستانه در پیدا شد. ولی و زمان به عکس خواهرش من از دو سلطنه چابک و فرز بود به اهل بگو بخند. رسیده و نرسیده نشسته و ننشسته گفت واا چرا شما دوتا مثل بوتی مارق و گوگو اینجا نشستیم؟ معاتیش بخاری رو زیاد کنیم آدم از سرما ما غذر گرد میکنه؟ اوش بلا بخاریه امسال انگار شیش من زمستون داشتیم؟ هیچ همچی چیزی شده؟ راستی بگه قرار نبا دور کرسی پراس شب چرا چ منافر دوله خنده گفت چرا منتظر امیرین بیاد میره متاک حالا بشین همجایی چای بخور با من نزد تا که چای هم گذاشته از دهن افتاد بیا رقیه بیا باز برای همه چای بیار از اون کاک یه دونه بخور تو دهن آب میشه مال کرمون رقیه سینی سنگین نقره را با لیوانهای بلور و گیره های میناکاری کار روسیه جلوی خانم ها گرفت و منور و دوله زرف های آب نبات پولکی و توت خشک و کشمش سبز را روی میز خاتم جابجا کرد تا جعبه کاک را نزدیکتر به من از بگذارد و وقتی روغی از تالار بیرون رفت به ملی و زمان گفت داشتیم از تفرک محسن خان حرف بزدیم عجب مصیبتی. بلای ناگهانی بود والله ملیو زمان که یک دانه کاک را کامل در دهن گذاشته بود و مراقب بود که خاک قندش نریزد با اشاره سر و حالت چشم و ابرو ماتمش را نمایش داد و به محض اینکه به ضرب جرعه چای نیم کاک را پایین داد گفت قیلش کردن جانم بله هیچ شک نکنین چیز خورش کردن تو قیهب شب از اون بالا پرتش کردن پایین بله مسلم این شک نکنی منور دوله سر را در دو دست گرفت و با وحشت گفت آخه بمیرم براش اما از کجا معلوم ملی میز محسن خان که درویش گل مولا نبود که خودش باشو و کشت گولش این همه آدم همراش بود منشی نوکر کالسکچی آخه مگه میشه ملی و زمان در حین جویدن گفت حالا که شده جانم میگن بالاخونه کارونسرار رو براش آب و جارو کردند رخت خواب پیشش اونجا پند کردند. شب تش نشده پاشده بره آب بخوره به جای که از در بره بیرون از پنجره رفته رو هره بام و پرد شده زیر به حق چیزهایی نشده محسن خان در رو با پنجره عوضی بگیره آج عرفا نخیر خودشون حولش دادن پایین قیلش کردن هیچ شک نکنید و پس چی شد بارو بونش چی شد کالسکش چی شد کیسه های پولش چی شد پور دوت تا دهشیش دنگتون کیزه ها بود کجا رفت آب شد رفت زمین دود شد رفت هوا بسم الله درو با پنجره عوضی گرفته چه حرفای نامربوطی اونم هیشکی نمیز محسن که همه انگوش به دهن حوشگاری و عقلش بودن مناور دوله گفت والا چی بگم آخه چرا آخه کی ملی زمان فوری گفت چرا درهم و دینار عزیزم سکه جیرینگی جانم کی؟ کی میخواستی خداشون با دار و قهوه دست به یکی کردن و کارو تموم کردن؟ هیچ شک نکنی کدوم قهوه خونه کدوم کارفونسران؟ ملی زمان جواب داد یک کاروون سر راه ساوه اینطور که میگن چند فرسخ به ساوه بیشتر راه نبوده حالا باید پرسید اصلا چرا آقا اونجا اطراخ کرده دو قدمیش همه دیوان خانه و دیوان سالار منتظر قدومش همه اینا هستی که هیچ جوابی هم ور نمیداره حکومت باید دنبال مطلب بگیره شوخی که نیست سر حاکم مشروطه رو زیر آب میکنن و آب از آب تکون نمیخوره؟ وا بسم الله. امیر سایوار کنار چارچوب در ایستاده بود و چشمهای سیاه درشتش پر از به دهان خالهش بود منور دوله قبل از دو زن دیگر او را دید و از جایش پرید و گفت ای فاطمه قربونت برم تو کی اومدی و همانطور که امیر را بغل میزد که ببوسد با دست به ملی و زمان اشاره کرد که صحبت را ختم کند و بیان که دوباره بنشیند او به مهمانان کرد و گفت خب دیگه شاپ سرم هم اومد پاشیم بریم اتاق کرسی از توی راهرو صدای پای خدمه می که بین اتاق کرسی و آبدارخانه در آمد و شد بودند روی لحاف کرسی چهلتکه صفره یک کتان گلدوزی شده پهن بود آجیل شور و آجیل شیرین در کاسه های نقره ملیله کار زنجان در وسط کرسی بود و در اطراف آنها گل پرپاش و نمکدان و شیشه آبقوره و سرکه دالار و سکنجبین و ظرف پرتغال شهسوار و سینی سیب زمینی تنوری و قده انار قوقوسی و قاب کاهوی پیچ و دیس باغلای پخته و کاسه کوفتی تبریزی را چیده بودند ملیح زمان قبل از همه وارد شد و به بهگویان زیر کرسی تپید و بشقابش را از خوراکی ها تلمبار کرد منور و دوله پشت سر او رسید و دست امیر را رها کرد و سرش را بوسید و گفت امشب این پسر پلو خودم بشینه آخر همه من از سلطنه با لنگرهای کند به چپ و راست داخل اتاق شد و در میان هنهنهای متوالی و خنده های ریز گفت واه من دیگه از نفس افتادم ملی زمان گفت بیا بشین خواهر تا من از این کوفته بذارم که ماه است پر قیسی و تخبه مرقه این اون حسن منور جواهر والا جواهر بدی منور و دوله گفت دستش نمک داره آره والا به خدا بخورید من از سلطنه که با چشم و بینی رنگ و عطر خوردنی ها را میسنجید گفت اول از اون سیبزمنی ها بده با گل پر داغ. منور دوله رو به پسر کوچه که منزه کرد و پرسید امیر جان برای تو چی بذارم؟ امیر با خجلت جواب داد من الان هیچ اشتحان ندارم خال منور منور دوله ملی و زمان و و سلطنه را به حال خود گذاشت و همه میزبانیش را معطوف به پذیرایی از امیر خان کرد و با قهر و مهری مادرانه گفت اشتها نداری؟ مگه میشه؟ باید بخوری چشم ولی حالا نبعدن چشمت بی بلا عزیزم اما بعدن نمیشه همین حالا از اون آجیل بخور آجیل که اشتهار نمیخواد خودم بودادم با آبلیمو و زعفرون باید بخوری یاله پاهای یخزده امیر از حرارت منقل زیر کرسی جان میگرفت و محبتهای منور و دوله به وجودش آرامش میبخشید و گره های بدنش دانه دانه باز میشد نه دیگر به سنگینی حضور مادرش فکر میکرد، نه به وراجی های بیپایان خالش. منتظر من تا منور دوله یا یالای دوم را گفت. آن وقت نیم خیز شد و دستش را به طرف کاسه نقره دراز کرد. تمام بخارات تنش که از زیر فشار میده در هم پیچیدش رها شده بود، تیزی شد و با صدایی رعداسا بیرون جست. ملی و زمان که با نان تافتون کبودان خورده و کوفته تبریزی لغمه قاضی گرفته بود و دهنش نیمه باز به استقبال لغمه رفته بود با تعجب امیر خان رو نگاه کرد و گفت وا امیر سرش را بر دستی که به طرف کاسه آجیل دراز کرده بود روی کرسی گذاشت و چشمهایش را با خستگی شرم بست تا منظه و سلطن زبان گشود خدا مرگم بده امیر منور دوله با صدای خفه گفت سست بی صدا منزد. نمی بینی بچه خست از خوابیده لبخندی بر صورت امیر پهن شد و آرام آرام خوابش بود